این داستان چرخ نخریسی کلید و هفت پرده روزی روزگاری پادشاه قدرتمندی بود که فقط یه دختر داشت. شاهزاده خانم اونقدر افسانه درباره پادشاه هفت پرده شنیده بود که یک دل صد دل عاشق اون شده بود و در جواب پدرش که می‌خواست، اون رو به خونه بخت بفرسته. دو تا پای خودش رو توی یک کفش کرده بود که جز پادشاه هفت پرده با کس دیگه ازدواج زباج نمی‌کنه. پادشاه بعد از جر و بحثای زیاد به این نتیجه رسید که حرف حرف دختره و اصرار بیفایده. بنابراین پیامی مهرمانه برای پادشاه هفت پرده فرستاد. که ای پادشاه بزرگ آیا مایلی با دختر من ازدواج کنی؟ ولی پادشاه هفت پرده با تکبر و قرور گفت من به شرطی با دختر شما ازدواج میکنم که اون تاره که دنیا بشه و منم کشیش پیک مخصوصی پاسخ رو به پادشاه رسوند اون با دیدن جسارت پادشاه هفت پرده آنچنان خشمگین شد که تصمیم گرفت با اعلان جنگ جواب دندان شکنی نسارش کنه. ولی دخترش مانع شد و گفت پدر پدرجون به این حرفا اهمیت نده. جوجه را آخر پاییز میشمرند. لطفاً لطفا دستور بده یه لشگر سرباز در اختیار من قرار بدن تا به سوی اون لشگر کشی کنم. به این ترتیب من حد اقل کمی از دنیای اطرافم را هم میبینم پادشاه قدرتمند اول با این پیشنهاد مخالفت کرد ولی بعد از مدتی حرف دخترش را پذیرفت و فرمان داد لشگری از بهترین سربازانش را بسیج کنند و همراه اون اعزام کنند پیشا پیش قوشون شاهزاده خانم روی اسب سفید نشسته بود و دنبال اون هم لشکر سربازها با اسب های سیاه در حرکت بودن. اونا رفتن و رفتن تا به پای تخت امپراتوری همجوار رسیدند شاهزاده خانم دستور داد و گفت چادرها رو برپا کنید و برید استراحت کنید. بقیه راه رو من خودم به تنهایی میرم. اما توجه داشته باشین وقتی شیپور زدم همه تون بلا فاصله نزدیک من بیاید. اون وقت لباس رو از تنش درورد و لباس بسیار ساده و معمولی پوشید و به عنوان خدمت گذار دربار در قصر پادشاهی مشغوله به کار شد. توی اون قصر پادشاه قدرتمندی زندگی می کرد که سرزمینی بسیار حاصلخیز داشت. ولی با داشتن قلمروی آباد و همسری با شخصیت و دختری زیبا هیچ وقت احساس خوشبختی نمی کرد. چرا که دختر به مرض مهلکی گرفتار بود و سرگیجه ای عجیب داشت. گویی که به یه چرخ نخریسی بسته شده. پزشکا دست دست دست سراسر جهان به دربار میومدند تا علاجی بر این درد بی درمان پیدا کنند. ولی همهشون دست دست پادرازتر بدون اینکه چاره رو پیدا کنند میرفتند. خدمتگزار جوان دلش به حال شاهزاده خانم میسوخت و مرتب از خودش میپرسید که چه عاملی میتونه این بیماری رو به وجود بیاره. روزی از روزها با کمال تعجب در گوشه از باغ قصر پیرزنی را دید که بدون وقفه یه چرخ نخریسی رو که هیچ پش روی اون نیست میچرخونه. حیرت انگیز تر اونکه هر وقت پیرزن دست از کار میکشید، سر شاهزاده خانم هم از حرکت باز میاد. خدمتگزار که حالا راز سر به مهر رو فهمیده بود همراه چند نفر از جوان و شجاع نگهبان قصر پیرزن را محاصره کردند ولی اون قبل از دستگیر شدنش مثل برق و باد ناپدید شد چرخ نخریسی از چرخیدن وایساد و شاهزاده خانم هم مثل آبی که روی آتیش ریخته باشه سلامتش رو به دست آورد شاهزاده خانم در به در به دنبال نجات دهنده خودش این طرف و اون طرف رفت تا از اون تشکر کنه ولی خدمتگزار به سرعت از قصر بیرون رفت شاهزاده با به صدا در آوردن شیپور لشکر خودش رو صدا زد و روی اسب پرید اون بر اسب سفید و سپاهیان بر اسب‌های سیاه خودشون چهار نهل از اون منطقه دور شدند دختر پادشاه در به در به دنبال پادشاه هفت پرده با لشکر محافظ خودش به رفتن ادامه داد تا به پایتختی رسید نزدیک دروازه شهر به لشکر فرمان ایستاد و به اونا گفت چادرارو برپا کنید و به استراحت بپردازید من بقیه راه را تنها میرم به باشین که با صدای شیپور من نزد من بیایید اون وقت دوباره خودش رو به شکل و شمایل خدمتگذاری معمولی درورد و به دنبال یافتن شغلی به قصر پادشاه اون سرزمین رفت. توی اون قصر پادشاه قدرتمندی زندگی میکرد که دارای قلم پهناور زنی بسیار زیبا و دختر ماهرویی بود. ولی با این همه نمیدونست چرا خوشبخت نیست. چرا که تنها دخترش ناشنوا بود و به غذا هم لب نمیزد خدمتگزار برای کشف این ماجرا آستیناشو بالا زد توی مدت کوتاهی فهمید که شاهزاده خانم وقت شب خودش رو توی اتاق محبوس میکنه. چراغ اتاق رو تا صبح روشن می‌ذاره و با دیگری به گفتگو می‌شینه اون شبیه از شبها خودش رو پشت پرده پنهون کرد تا سر از این معما در بیاره. اون شب به محض اون که شاهزاده خانم در رو قفل کرد، تعدادی از کاشی‌های کف اتاق از جاشون بلند شدند و از زیر اونا جوانی برومند بیرون اومد. اون کنار شاهزاده خانم نشست. کلید طلایی جیبش بیرون آورد و قفل دهان اون رو باز کرد و باب گفتگو رو هم باز کرد. شاهزاده خانم هم در کمال شادمانی صحبت می کرد و غذا میخورد. این داستان تا صبح ادامه داشت و با اولین خروزخون سهر جوان کلید رو برداشت دهان شاهزاده خانم رو قفل کرد و ناپدید شد. اون تمام روز دهانش رو نگوشد و لب به قضا هم نزد. شبا از پی هم می‌رفتند تا تو یکی از شبا اون جوان برومند کلیت رو روی میز گذاشت خدمتگزار با استفاده از فرصت وقتی که جوان و شاهزاده خانم غرق گفتگوهای عاشقونه بودند از مخفیگاهش بیرون پرید و کلیت رو برداشت جوان مثل برق غیب شد تلسم شکست و از اون به بعد زبون شاهزاده خانم مثل بلبل به سخن در اومد. اما قبل از اینکه پادشاه بتونه از اون تشکر کنه اون همراه لشکرش سوار بر اسبها شدن و قصر رو ترک کردن دختر پادشاه مصمم و امیدوار بیابونها رو به هوای پادشاه هفت پرده رفت و فارغ از سختیهای راه و خارهای مقیلانه بیابون در پی معشوقه خودش رکاب میزد تا سرانجام به آمال خودش رسید این بار هم در دروازه شهر به لشکر فرمان ایستاد و گفت چادرها را برپا کنید و استراحت کنید من بقیه راه را تنها میرم با به صدا در آمدن شیپور نزد من بیایید اون وقت لباس مندرسی پوشید و به صورت خدمتگزار آماده به کار به دربار رفت ملکه مادر پادشاه هفت پرده با دیدن اون پرسید چه کاری بلدی دختر جون خدمتگزار گفت گلدوزی ملکه بزرگوار ملکه با اظهار رضایت گفت بسیار خوب تو به درد من میخوری من به یک گلدوز احتیاج دارم تا برای پسرم هفت پرده گلدوزی کنه به این ترتیب ملکه دختر را استخدام کرد اون تمام روز کنار پنجره می و گلدوزی میکرد. با به آخر رسیدن گلدوزی اولین پرده پادشاه که شخصا اون رو دیده با پسندیده بود گفت که در عمرش کاری به این زرافت و زیبایی ندیده. ولی نیمی دونست چرا در یک طرف پرده عکس یک تارک دنیا و در طرف دیگه اون عکس یک کشیش گلدوزی شده. بنابراین علت را از دختر پرسید. دختر گفت من این نقش رو دوست دارم. پادشاه کم کم به گلدوز زیبا علاقه مند شد. همیشه به دیدنش می رفت. گلدوزیهاش رو تماشا می کرد و با اون به گفتگو مینشست. تا عاشق اون دختر شد. اما این راز رو به دختر نگو. دختر پادشاه بعد از تمام شدن گلدوزی هفت پرده، شبی آهسته و آروم تمام هفت پرده را به اتاق پادشاه برد. اون رو زیر متکای اون پنهون کرد و آروم دو از اونجا رفت و قبل از اینکه کسی بفهمه از قصر خارج شد. با شیپور سربازاش رو نزد خودش خوند و سوار بر اسب سفید از اونجا دور شد. پادشاه از خواب بیدار شد زیر بالشت خودش هفت پرده رو پیدا کرد یک روی پرده ها عکس تارک دنیا و روی دیگه اون عکس کشیش گلدوزی شده بود بالای اون هم این جملات به چشم میخورد. تارک دنیا منم کشیش تویی شاهزاده خانم منم پادشاه مقرور و متکبر تویی تو این وقت پادشاه هفت پرده که به خاطرش رسید مدتی پیش دست رد به سینه دختر پادشاه قدرتمندی زده بر سرزنان و پشیمان به اتاق گلدوز زیبا رفت ولی اثری از اون پیدا نکرد دستور داد دنبال دختر بگردنم. دستور جست و جوی خونه به خونه هم ای نداشت. بنابراین هیچ راهی نموند جز این که به دنبال دختر راه کوه و بیابون اون رو بگیره. بنابراین رفت و رفت تا به سرزمین پادشاه قدرتمند رسید. پادشاه اون رو با احترام ویژهی که شایسته مهمون عالی مقامه به حضورش پذیرفت. ولی شاهزاده خانم، به ظاهر حاضر به دیدار با اون نشد سرانجام با اصرار پدر پذیرفت که پادشاه هفت پرده رو ببینه اون گفت من با اون ازدواج خواهم کرد روزی که اون کشیش بشه و منم تارک دنیا البته شاهزاده خانم سه ماه پادشاه را در پشت در منتظر گذاشت تا قرور و تکبر در وجود اون نیست و نابود بشه و بعد از اون